سلام عليكم خار عزيزه فاطمة سرابادي جون و إن شاء الله سلام عليكم الحمد لله سلامتيش من من بحضوره خيلي خيلي ميگم خيلي خوش اومديد و خيلي خوش حالم خيلي خوش حال سلامت دنده باشي و چون شما موافقت كردي به ضبط اين فيديو اين فيز و بخش داخل سايت مون مكالمه عربي جزاه خير خيل خير تشكركم اي الممنونه تقدشت موافقه سدرسه شما موافقه باه ممنونه من از لطف ومحبه شما حبتها برادرانه زنده باشين خب فاطمه جون شما داخل سايتكم المكالمه العربيه انا مرتين وقاطم مثبتي روديدي دي تشيز هاي بنظري ديدي دي بفرما خب یه دلیل خیلی خوبی که میتونه این سایت داشته باشه ولیکن که بندی خوبی انتخاب شده حالا چون که با لپتاپ یا گوشی وارد میشین چشمو اذیت نمیشه و رنگ بندی ها به نظرم خیلی خوب انتخاب شده و اینی که به دو زبان مسلطه با این که حالا ما تو سایت ها رو میبینیم میخوان حالا جاهای دیگه رو چک کنیم که در زبان عربی میخوان کلاس برگزار کنن یا خدماتی ارائه بدن تقریبا برای فقط ایرانی ها میشه استفاده کرد چون زبان فارسیه ولی سایت مکالمه عربی به دو زبانه هم زبان فارسی هم زبان عربیه و اینکه یه نقطه مثبت دیگه هم که داره اینکه وقتی که نظرات حالا کسایی که کلاس دارن یا به میخوان ارائه بدن نظراتشون شما خب هم متن گذاشته میشه و هم اون ضبطی که حالا اون کلیپی که ضبط شده میذارن و باز هم اون متنه به زبان عربی گذاشته میشه و اینکه خب یعنی همه جای دنیا به زبان هر کس مسلط باشه خب میتونه استفاده کنه و زبان فارسی یه که فقط خب ایرانی زبان ها, ها میتونه استفاده کنه ولی عربی باشه خب چون ما حوزه زبان عربی در اطراف ایران زیاده خب اونا هم استفاده میتونه ببرن و هم از خدمات متفاوت استفاده یه گزینه خیلی خیلی خیلی عالی که من خودم دارم استفاده میخوام ازش در آینده بکنم که تخفیفات خیلی خوبی بله هم برای خود کسی که میخوام یاد بگیره برای تخفیفات حالا حزینه شهریه و هم خدماتی که ارائه میده برای کتاب خیلی از کلیپ ها یا کتاب ها صورت رایگان گذاشته شده. خب الان هر جو بری؟ اینا رو باید پول بدی تا خریداری کنید ولی اینکه حالا راحت کلیپ گذاشته میشه یا از اون کتاب گذاشته میشه خیلی م... م... متمایز میکنه این سایت از بقیه سایت ها درست در خب راجع به تخفیفات ویژه ما چی نقاط مثبتی رو دیدی به فرما خب یک اولین مزیدی که بخواین در نظر بگیریم برای کلاس این که شما بارده کلاس میشین و سایت مکال عربی و میخواین شروع به کلاس بکنین یه 10 ده درصد بهتون داده میشه حالا شما میخواین برای کلاس های بعدی ازش استفاده کنین یا هر طور که خود, خود زبان آموز سلام میدونه و در 10 درصد سود بهتون داده میشه از هر فردی که حالا بخواد از این فیش شما استفاده کنه خب، حالا یا شما اون سود رو بعدا استفاده میکنه یا اینه که در حین کلاساتون استفاده میشه آه... و این و در ادامه فقط شامل اینا تخصصا نمیشه تفاوت دیگه هم داره اینه که ای تفاوت گذاشته شده این که درست. شما اگه سال تولدتون مطابق با تقویم اهل بیت حالا به گونه اینجوری بگم باشه درست. حالا مثلا تاریخ تولد شما با تاریخ تولد حالا اون ماه اهل بیت یکی باشه روز اهل بیت یکی باشه حالا دوست گذاشته شده است. شامل چه روزهایی میشه درست. خب اون یه تخصصی داره شما دانشجوی دانشگاهی دولتی باشین اون خودش تخفیف داره و همچنین اگر کارمند دولت باشین کارمند حالا هر ادارهی باشی اونم شامل تخفیف میشه. یعنی برای هر قشری چه دانش آموز چه دانشجو چه کارمند اینا همه یه تخفیف خاص خود داره. به علاوه در مال تخفیف به علاوه بله بله اینو جدای از اون بیسترصد اولی است درسته کاملا درسته, درسته. دیگه چون قطعی مثبت رو دیدی داخل سطح مقالم عربی یکی خدمات داره توی سایت حالا خدمات متفاوته دیگه اینه که حالا یه قسمتش میاره و در مورد اساتید در ادامه که میخوان شما اگر همکاری بعد از اینکه حالا خواستیم شروع به فعالیت های بیشتر کنی خب بخش متفاوت داره یه بخش اسیب داره بخش استفاده که حالا شما یهخوا که عربی رو فول شدیم میخواید شروع به کار کنید و شروع به حالا تفسیرهای های متفاوت بعد از اینکه حرفه ای شدین خب این نقاط خیلی مثبت اینه که هر کسی دنبال کار میگرده و این معنویت دینیش رو هم قوی کنه خب این سای برای شما فراهم میکنه درست بله دسیارال. خب فاطمه جان الان از بنده از عدم الحرشمی از من چی یاد گرفتی؟ راجب زبان عربی میگن یک هست از اهل بیت میگن که اگر آیا کسی ش... به شما چیزی رو یاد داد شما بند شما بنده اون میشی ما <معلوم> الان بنده آقای استاد رافل آدام الحاشمی شدیم و بسیار بسیار بسیار, بسیار کلاس‌های شیرین کلاسهایی که با ظرفیت عالی و این و از همه مهمتر اینه که حالا ممکنه که هر کسی تو کلاس‌های عربی بخواد تو هر مقطعی چه خصوصی چه عمومی بخوا شرکت کنه تو هر کلاس اصلا تو جهان شرکت کنه هدفش رو میپرسن ولی چون هدف رو میپرسن ولی مطابق هدف پیش نمیرن متاسفانه ولی کلاس با شما یه جوریه که مشخص میکنیم الان مثلا هدف خودم مین که تسلط کامل بر زبان عربی برای دانشجو هستم و میخوام ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر بدم و این بالاخره نیاز به حرفهای شدن نیاز به تسلط بر عربی و زبان قرآن دارم و شما مطابق همون دارید با من پیش بیدین اصلا من شاید دارم نخواد تجارت برم شاید دارم نخواد که زبان عربی رو مثلا لحجه هاش رو یاد بگیرم فقط دوستان زبان قرآن یاد بگیرم و شما دقیقا اون نقطه هدف میزنین اون شاگرد یا دانش آموز یا زبان آموزت رو و این عالیه والی واقعا حالا پولش هدر نمیره میدونه که یه جایی داره سرمایه گذاری برای آیندهش میکنه که عاقبت داره واقعا برای استعداد خود داره. زبان درست درسته نه فقط پولش هدر نمیشه وقتش عمرش اینه مهمتر است بود وقت، ارزش وقتش واقعا هلال نمیره هشت هم ممکنه یکم طولانی بشه ساعتها طولانی بشه اینا ولی واقعا میارزه واقعا میارزه که آدم به زبان عربی مسلط بشه چون شیرین ترین و فسیه ترین زبان دنیا درسته و اصول ترین زبان در دنیا کلا دنیا. با شما اصول میشه در من بهت خیلی افتخار میکنم خوار ازم فاطم جون. انا فاطمه سرابندي خير خير بيت افتخار مكنم وباسم ازاته خيل تشكل سو خيل سو پاسگزارم راجبه تشرف شما حضورته انجا فراجبه قبول شما به زبط این این ویدیو داخل سایت مو کالبر خیلی ممنونم از تا ممتاز. ممتاز. که بدونن که از این باید کسی که میخوان اینجا کلاس یعنی شرکت کنن بدونن که به قولی همون وقتشون و پولشون هدر نمیره نیازه ممتاز. که این حرفها گفته بشه تا بدونن چه کلاس های با عرضش قرار شروع کنه. ممتاز. خیلی ممنونم نیبیونم الله تا جلسات بعدی یا به بی... یادگیری زبان عربی گامه این شاید این خدا